یه چیزی داریم به نام روح از روح من قافلیم اصاره دین همه‌ی اون که قرآن و روایات و اهل بیت و انبیاء ازام خاصه خاتم انبیاء محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و علیه و وسلم دنبال کردن و میکنن این هستش که این دل و روحمون رو بتونن زنده کنن همه رسولات قرآن و روایات دنبال این هستن که روح رو احیا کنن از این چروکیدگی و خاموشی بیدار کنن زنده کنن و او بشه حاکمه بر بدن ما حاکمه بر در واقع وجود ما برای احیاء روح باید انسان اقدام کنه اللهمی تبا طب تبایی رزبان الله تعالی علی که واقعا اینها در زمان ما و در اصل ما و در هر اصلی که اینجور انسان ها هستن بعد از حضرت به عنوان نمایندی امام السلامون علی پایه های نگه عالم هستن اینها دیگه از جهت پوش و استعداد و حافظه و دقت انسانی سرآمدن هر آنچه که بعد از عین میشه فهمید رو اینا خدا بهشون یه قدرتی داده فهمیدن ایشون میفرماید که چون ما ابدی هستیم و برای ابد ساخته شدیم باید به روحمون که مندگار هست و ابدیه قبل بوده حال هست در آینده هم خواهد من. بدن ما قبلا نبوده قبل از پیدای شما و بعد از رفتن ما هم دیگه نیست این بدن یه دوران موقتی رو هستی داره وجود داره اما روح ما از قبل و حال و آینده وجود داشته و وجود داره و هستی خواهد داشت ابدیه ما برای عبد باید فعالیت کنین ایشون میفرماید ما ابدی هستیم برای عبد باید فعالیت کنین لزوم میفرماید مهمترین این عبارت عبارت بسیار مهمی است و گویا میفرماید مهمترین کار خودسازی است به روح رسیدن خودسازی یعنی روحتون رو بسازید و زنده کنید احیا کنید روح حاکم بشه دستور بدن از روح باید صادر بشه نه از میل ما الان هر چی میلمون هست دیل میخواد به روح میگیم روح همه اعضاب دستگاه جوارحی ما رو به حرکت در میره برای رسیدن به اون میلمون. باید جا جا بشه روح باید دستور بده میل اون سمتی رو بگیره که روح میخواد لذت و همه خیرهایی که میخواد دستورش از روح باید بگیره روح وقتی مچاله شده هست وقتی ضعیب هست وقتی توی زاویه از وجودمون زندانی هست احیای نداره لذا فرمایش کردن که دینداری نتیجهش احیای روح انسانه در دنیا و در آخرت هم استفاده میکنه از اعمالی که به دستور خودش بدن انجام داده و روح رو هرچه تقویت کرده و پیش برده لذا مهمترین کار رسیدگی به روحه